با صدای آرام مادر و سورایا هوشیار شدم ولی چشمهایم را باز نکردم. سورایا داشت می گفت. دیدین بیخودی خودی و جوش خوردین؟ من که گفتم حتما یا خوابیده یا رفته بیش مرگم. چی می دونم مادر؟ وقتی دیدم جواب تلفن رو دلم هزار را رفت. صدای بلند امیر آمد. سورایا؟ کجایی؟ پس چرا نمیایی؟ مادر آرام گفت مادر یواش، خوابیده؟ امیر با لحنی گزنده و پر از هرس گفت اه، پرنسس خواب تشریف دارن؟ و در جواب مادر و سرایی که میگفتند یواشتر با صدایی بلندتر از قبل ادامه داد مامان، به خدا دیگه من از دست رفتار شما بیشتر از خود اون دارم زل میشم. آخه مادر من؟ چرا قبول نمیکنین که این دیگه یه دختر و چه یه ساله نیست؟ به خدا من امروز جلوی اینا آب شدم. بازدار این اشتباه چند سال پیش و ادامه میدینا؟ بالاخره کی این باید به مردم ناکر باباش نیستن؟ که یاد میگیره چه چجوری رفتار کنه؟ سریا برای اینکه قائل قائله را ختم کند گفت. سهرکو، بریم دیر شد. با این پیش محمده. محمد؟ پس محمد همراهشان آمده بود. الان آن پایین دمه درست. چقدر دلم میخواست بلند شوم و از پنجره پایین را ببینم. ولی میترسیدم از صدای تخت بفهمند که بیدارم. دوباره با حرفای امیر که نمیدانم حس میکرد من بیدارم یا با صدای بلند میگفت که بیدار شوم حواسم متوجه حرفای او شد. مادر جون، پی نگین با مردم خوب رفتار میکنه. به خوده اگه ناصر و مریم نبودن این با این خلق و خوش نمیتونست اون محد رو هم بچرخونه. چرخونه. من بچه که نیستم. اسمش اینه. ایشون مدیر اونجان ولی اصل قضیه گردن ناصر و مریمه. خب آخه تا که این هر دلش میخواد بکنه و دیگران جورشو رو بکشن. بلاخره باید درست ندهی کردن و یاد بگیره یا نه؟ یک لحظه فکر کردم. همچو رو هم نمیگویم. واقعا اگر ناصر و راهنمایی و تلاشش نبود و پشت کار و زحمت های مریم من اصلا از عهده بر نمی آمدم ولی من کی فکر کردم همه نوکر بابامند چرا امیر این در موردم خسابت می کرد سرایا گفت امیر جان الان چه وقت این حرف از اون گذشته اینا که مربوط به مادر نمیشه تا بعد با خود مهناز حرف بزن امیر کلافه گفت پس کی وقت این حرفاست به مامان میگم چون مقصرن. شما یه امروز خودتون رو جای من بذارین؟ سریا گفت. ای امیر چرا حرف غیر منطقی میزنی؟ خب مادرم اونجا بود. مادرم ناراحت شد. از اون گذشته. تو چرا خودتو جای اون نمیذاری؟ تو چه میدونی توی سر اون چی گذشته؟ تازه حالا هم طوری نشده. خواهش میکنم؟ امیر حرفش را خط کرد. اما دوباره سریا با لحنی که هم رنگ خواهش داشت هم باز دارنده بود گفت. امیر خواهش کردم. زود باش بریم دیر شد. امیر عصبی گفت. خوبه دیگه. مامان کم بود تو هم اضافه شدی. بعد در را به همزد و رفت. سریا به مادر اصرار کرد که همراهشان برود ولی مادر گفت. مادرجون. من دیروز اومدم از قول منم سلام برسون ایشالا فردا با مهناز میام چند روزه میخواد بیاد بیمارستان نمیشه بریم به سلامت پس محمد داشت با آنها میرفت بیمارستان چقدر دلم میخواست بدانم الان در چه حالیست چه فکری میکند از حجوم دوباره یه فکر باز شده بود و سرم داشت به دوران میافتاد با خود میگفتم شاید هم امیر راست میگه. چرا اخلاق من اینجوریه؟ چرا هر کاری به مغزم خطور میکنه بدون فکر انجام میدم؟ خب راست میگه. تا کی میشه خرابکاریه منو مامان ماست مالی کنه یا دوستام تحمل کنن؟ ولی من لوس نیستم. نه، فقط احمقم. ام ولی لوس نیستم. مثل همین امروز. اگه احمق نبودم خب یه خورده دندون سر جگر میذاشتم نمیمردم که حالا خبر مریم اومدم بیرون بازم اگه اخلم کم نبود خب میتونستم خفه خون بگیرم ببینم چی میخواد بگه نه اینکه اون حرف ها رو که اصلا معلوم نبود از کجا آورده بودم مثل برفره جادو بگم اما خوب اگه صبر میکردم و مثلا اون میگفت من فقط میخواستم بگم به خاطر دوستی با امیر مجبوریم ارتباط داشته باشیم. یا یه همچین چیزی و یه جوری به هم میفهمون که مجبور من رو ببین اون فکری توی سرش نیست اون وقت چی؟ بدبخت اونطوری که بدتر بود آره اون جوری دوباره اونطورو رو پس زده بود و دیگه هر حرفی میزدی بیفایده بود نه اینطوری بهتر شد اون اگه خیال دیگه توی ذهنش بود که رفتارش اونجوری خشک نبود یا لحن حرف زدنش بعد یاد حرف زدن و رفتارش افتادم چه کسی باورش می این همان محمد است؟ آن موقع که زنش بودم همینطور نبود. حالا بعد از هشت سال چطور به خودش اجازه داد؟ در اتاق باز شد و مادر چشمهای بازم را دید. دیگر نمیشد خود را به خواب بزنم. پس سلام کردم و مادر با دلخوری جوابم را داد و گفت. ساعت چار و نیمه؟ پاشو یه چیزی بخور فکر کردم جای امیر خالی که دوباره جوش بیاورد پاشدم خسته و کوفته بودم انگار تمام رگ و پیهای بدنم درد می کرد و اوقاتم آنقدر تلخ و اخمه توی هم بود که مادر چیزی نگفت اما چه فایده توی سر من انگار هزار تا آدم با هم حرف می زدند. نظر می دادند. محکوم می کردند و تبرعه می کردند قوغایی که در درونم بود غیر قابل تحمل بود دو سه روز بعدی مثل مرغ سرکنده جان می کندم و پرپر پر می زدم. اما بی حاصل یاد حرف خانم جون افتادم که می گفت چیزی زوری از خدا نباید خواست خدایا نکند چون من به زور است و خواستم برش گردانی حالا داری چنین مجازاتم میکنی. آنقدر توی سرم قوقا و جنجال بود که دیوانه ام کرد. و از آنجا که با هیچکس کس نمی حرف بزنم، انگار دردم چندین برابر شده بود. بعضی دردها هست که آدم حتی به صمیمیترین کسانش نمیتواند بگوید. من حتی به مریم هم رویم نمی‌شد اعتراف کنم که هنوز آشقان محمد را دوست دارم. و از طرفی تازه میفهمیدم فهمیدم که همون چند سال پیش هم اگر نرفته بود شاید طاقت از دست میدادم و برای برگرداندنش دست به هر کاری میزدم. بعد از آن نه سر کار حواسم جمع می نه توی خانه قرار و آرام داشتم نه شبها خواب شبها تا صبح درد معده و افکار پریشان و درهم و برهم جانم را به لب میرساند. و روزها خسته و کلافه نه حوصله یک کار داشتم نه اینکه که ای با کسی حرف بزنم درست مثل برج زهرمار مدام یک دستم روی معده بود و یکی به سرم و به این ترتیب دو روز گذشت صبح دوشنبه بود در حالی که درد ماهانه هم به نراحتی هایم اضافه شده بود با حالی زارتر از روزهای قبل و نال کنان آماده می شدم که مادر گفت خوب اگه حالت خوب نیست نرو تلفون بزنم به مرگم. دلم نمیخواست در خانه بمانم. توی محیط کار لاقل گذران وقت را نمیفهمیدم. گفتم. نه مامان، میرم. کار دارم. مهناز. دوشنبه دیگه رفتنمون صد درصده من به علی بگم. بله. بیلیتا رو امروز میگیرم بهش بگی. منظور مادر بلیت های مشهد بود. قرار بود هفته بعد سه روز به مشهد پیش علی برویم که هم مادر علی را دیده باشد هم زیارت کرده باشد. خدافز. مادر رسیدی زنگ بزن دلم شور نزن. باشه چشم. دیرتر از معمول رسیدم. مریم که معلوم بود خیلی وقت است منتظر است همونطور که پریا را میداد بخل من گفت معلومه کجایی؟ خوب، دیروز بهت سفارش کردم صبح باید برم وزارت کار. بعد همانطور که دور میشد گفت. غیر از شیر به پریه هیچی نده. اگه هم تب کرد قطرش توی کیفه. دیروز واکسن زده و تب کنه. خداحافظ. بعد از چند روز امروز انگار تازه پریه را میدیدم دیدم. بقلش کردم. از دیدن آن نگاه معصوم و خنده های قشنگش چه آرامشی به من دست میداد؟ حواسم به کلی متوجه پریا شد؟ با همه دردی که داشتم همانطور که توی بقلم بود قدم میزدم و برایش لالایی می خاندم تا خوابش ببرد. خوابید و باعث مرا با فکر مزخرفم تنها گذاشت؟ فکر اینکه چه میشد اگر من هم مثل همهی آدم ها الان یک زندگی معمولی داشتم و یک بچه مثل این؟ که با در آغوش گرفتنش میشد همه ی های عالم را فراموش کرد فکر اینکه چند سال است توی برزخ اسیر تا کی باید اسیر بمانم معلوم نیست و اینکه هنوز بعد از هشت سال روح زخم خورده ام قدر راست نکرده و حالا دوباره بالای سر پریایی که مثل فرشته کوچولو به خواب رفته بود نشسته بودم و در دریای طوفانی فکرهایم قوته می میخوردم. در حالی که دردی مثل مت توی کمر و معدهمام می بیچید. احساس کردم کمرم دارد سوراخ می شود. چشمم به ساعت خورد. یازده بود. وای یادم رفت به مادر تلفن بزنم. اما تا خواستم بلند شوم پرییا گریه کانان بیدار شد. شیرش را درست کردم و کنارش زانو زدم. موهای خیس خیص عرقش را کنار زدم و پیشانی صاف و سفیدش را بوسیدم. و فکر کردم؟ لآقل تو توی این دنیا میتونی منو از توی قرقاب در درهم و برهم بیرون بیاری. پریا با آرام شروع به شیر خوردن کرد و من همونطور که قربان صدقش میرفتم یک لحظه احساس کردم دیگر درد کمرم غیر قابل تحمل شده. در حالی که مثل پیر زنها دستم را به کمرم میگرفتم با ناله از جا بلند شدم و فکر کردم باید مسکم بخورم. دیگر تا نداشتم. رویم را برگرداندم و چشمم به محمد افتاد که توی قابه در ایستاده و به چهارچوب تکیه داده بود. کیامته بود. دیدنش آنقدر ناغافل بود و دور از ذهن و عجیب که مثل آن روز در خانه امیر مغزم را از کار انداخته بود و زبانم بند آمده بود. آرام گفت. سلام. نتوانستم جواب بدهم. فقط روی مبل کنار پریا ولو شدم. نزدیک شد. نگاهی به پریه که داشت شیر میخورد کرد و با لبخند پرسید. دختر مریمه؟ مثل آدم های لال با چشمهایی از ترچوب گرد شده فقط سرم را تکان دادم. گفت. چقدر قشنگه؟ خم شد و دستهایش را بوسید. همین موقع مریم با عجله وارد شد و او هم بدتر از من خوش زد. محمد هم ما، گرم و دوستان سلام و احول پرسی کرد. مریم در حالی که به خودش را جمع و جور می کرد دائم نگاه پرسشگر و متعجبش از من به محمد و برعکس خیره می شد. محمد گفت باید ببخشید مریم خانم. من باید با گل و شیرنی می اومدم. هم ازدواج، هم محل کار، همین کوچولو متاسفانه عجله داشتم. ایشالا فرصت بعدی. بعد رو به من که هنوز گیج و مپوت نگاه می کردم گفت. می شه لیوان آب به من بدی؟ به سختی از جا بلند شدم. وقتی برگشتم داشت از اتاق بیرون میآمد و از قیافه مریم فهمیدم را هر چه که بوده به او گفته و از قرار معلوم آب بهانه بود. آب را خورد. از مریم خودحافظی کرد و رو به من گفت. بیرون منتظرم. فقط عجله کن. با همه گیجی و بخت زدگیم از اینکه هیچ برای رسمی حرف زدن سعی نمی کرد احساس رضایت و خوشحالی کردم و سری رو به مرگم کردم که خودش بدون سوال گفت مهناز مثل اینکه مادر سرعی حالش خیلی بد شده محمد اومده ناخداگاه گفتم مرده؟ سرش را تکان داد و اضافه کرد امیر گفته شمسنامش بیشه توه خدایا آخرم نرفتم ملاقات بیچاره سریا یاد روز مرگ پدرم افتادم و اینکه سورایا غیر از این مادر کسی را نداشت و خودم که اینقدر سر در گریبان بودم که این چند روز بالاخره نرفته بودم ملاقات با خود گفتم الان سورایا چه حالی دارد و من چطور توی صورتش نگاه کنم بی اختیار اشکم سرازیر شد یاد چهره مظلوم و درد کشید دیگه زهرا خانم افتادم که با صدای مرگم به خودم اومدم. محل زود باش چرا همینطور وایسادی محمد بیرون منتظره کیفم را برداشتم و خواستم با عجله بروم که باز گفت شناسنامه رو برداشتی؟ شناسنامه پیش من نبود. چون برای تعویض همراه شناسنامه خودمان فرستاده بودم. فقط قبض پستخانه بود. خبز را برداشتم و دویدم. مریم صدا زد. به من زنگ بزن بگو تشییع جنازه چه موقع است تا منم بیام. باشه. خدافس. با عجله سوار ماشین شدم و محمد فوری حرکت کرد. چقدر معذب بودم و فضای ماشین برایم سنگین بود. در حالی که دستم به کمرم بود که دردش داشت بیچاره ام میکرد بی بدون اینکه به او نگاه کنم پرسیدم: کی فوت کرده؟ صبح سو را میدونه؟ تو صبح که تلفن زدن من و امیر رفتیم بیمارستان. چیزی بهش نگفتیم. الانم سر راه امیر رفت دنبال مادر که با هم برن خونه. فکر می‌کنم دیگه تا حالا فهمیده. فکر کردم پستی شب خانه ی امیر بوده. بدون اینکه به هم نگاه کنیم حرف میزدیم و من از لحن حرف زدنش نمی‌توانستم به افکارش پی ببرم. و در عین حال از حال و روز خودم از درد بی درمانی که داشت دیوانه ام می کرد و از یاداوری سرعی یا عشق هایم بی اختیار دیگر درد از دست دادن را میشناختم و می توانستم حس کنم که سرعیا چه زجره می و دلم می سوخت من داغ مرگ خانم جون و پدرم را چشیده بودم و حالا از هم دردی بود که اشک میریختم. گریه میکردم و از درد به خود می پیچیدم. او هم با قیافه ای در هم روبرو رو را نگاه می کرد. یک دفعه ماشین را نگه داشت. بدون حرف پیاده شد و رفت و من توانستم برای چند لحظه با خیال راحت و صدای بلند گریه کنم. واقعا خودم هم نمیدانم آن روز برای چه کسی بیشتر گریه می کردم. برای خودم، برای سورای یا برای زهر خانم. با صدای محمد که به پنجره ای کنار من می زد از جا پریدم. باز بدون حرف یک لیوان آب میوه و چند تا قرص به دستم داد و من یک دفعه گر گرفتم و پتنم داغ شد. برای چند لحظه همه چیز فراموشم شد و شوقی بی اندازه وجودم را پر کرد. همان قرصی بود که چند سال پیش وقتی دردهای ماهانه هم شروع می میخوردم. هنوز به یاد دارد. خیص عرق شرم شدم. حالا دیگر شوهرم نبود. اصلا از کجا فهمید؟ شاید خودش هم همین حس را داشت چون چند دقیقه بعد سوار ماشین شد. ولی من چه حالی بودم؟ دلم گرم شده بود و حس شیرین اینکه هنوز گوشه ی ذهن او جایی دارم توی رکایم جاری بود. خونه گرمه همان مهناز ده سال پیش. از خجالت حتی رویم نشد تشکر کنم و بقیه راه در سکوت گذشت. سکوتی که حالا برایم شیرین بود و بعد از مدتها حس می کردم کمی آرام گرفتم. بالاخره به خانه امیر رسیدیم و صدای های های گریه و زجه های سریا دوباره به زمان حال برم گرداند و پاهایم را از رفتن نگه داشت. با نگرانی در حالی که لبهایم را به دندان گرفته بودم مردد ایستادم و محمد پشت سر من منتظر ایستاد. صدای جیغ های سریا آنقدر دلخراش بود که بدنم را لرزه عصبی گرفته بود و نمیتوانستم قدم بردارم. دلم میخواست از کسی کمک بخواهم. بی اختیار و مستعسل و نگران و با چشم‌هایی پر از اشک به سمت محمد برگشتم. کلامی بینمان رد و بدل نشد. فقط چشم به چشمهایش افتاد که با همان نگاه هایی که به من آرامش میداد و قدمهایم را محکم می کرد نگاهم کرد. انگار جان گرفتم. برگشتم و تند از پله ها بالا رفتم. چه روز و سختی بود؟ تا به آن روز سرعیه را اینقدر بیتاب و رنجور ندیده بودم چنان از ته دل زار و مادرش را صدا می کرد که دلم ریش میشد. آن روز فهمیدیم که سرعیه دوباره باردار است و امیر کلافه و آشفته حال تمام سعیش را برای آرام کردن سرعیه می کرد کم کم خانه شلوخ و شلوختر شد و بالاخره تصمیم گرفتند بدون اینکه به جواد خبر بدهند همان روز زهر و خانم را دفن کنند. جواد یک ماه بود که از طرف شرکت به هلند رفته بود. سریا اینقدر بیتابی می کرد که امیر تصمیم گرفت او را هم برای تشریه جنازه نبرد. تفلک سریا، چقدر به مادر و امیر التماس کرد و بالاخره دل همه نرم شد. هیچ وقت ای را که سریا از مادرش خدا وزی می کرد فراموش نمی کنه. چقدر زار زد و التماس کرد که امیر بگذارد یک بار دیگر صورت مادرش را ببیند. ولی به دلیل حامله بودنش اجازه ندادند و امیر در حالی که خودش هم زار میزد، گوشه یک کفن را باز کرد تا سریا بتواند دست مادرش را ببوسند زجه های سریا که زار زنان دست زهر خانم می بوسید را میبوسید مرا یاد پدرم انداخت. و اینکه حتی نتوانسته بودم از او خدا از گرما فشار روحی و استراب و گرگه شدید حس کردم تمام توانم را دارم از دست می دهم. به ناچار سهر را که بغلم بود به مریم دادم و زانو زدم. انگار صداها توی گوشم میپیچید و لحظه به لحظه ضعیفتر تر می شد. فرزانه لیوانی آبغند به دستم داد و کمکم کرد از جا بلند شوم. سهر گریه میکرد و بغل کسی آرام نمی گرفت. اما من قدرت نداشتم و کنم. فرزانه که خودش هم گریه میکرد جلو آمد و گفت مهناز جان، سهر بد جور گریه می کنه. این بچه مریض میشه؟ اگه شما یه جا بشینین بغلش کنین شاید آروم بکره. سرم را بلند کردم و سهر را دیدم که محمد سعی می کرد از امیر جداش کند فرزانه صدا زد و محمد همراه سهر که از بس گریه کرده بود به حق حق افتاده بود آمد فرزانه گفت بدنش به, به امش شاید آروم بکره. بیان که نگاه هم کند از فرزانه پرسید میتونه بغلش کنه؟ دستم را دراز کردم و سرم را تکان دادم. محمد باز رو به فرزانه گفت برین توی سایه، هوا گرمه. آن روز بالاخره هم سریا کارش به بیمارستان کشید و هم سر مریض شد. دکتر به سریا اختار کرد که اگر دقت نکنند بچه را سخت می کند هم هم گرمازده شده بود تفلک امیر پریشان حال آشفته یک سره یا مشغول سحر بود که آرام نمی گرفت یا سریا که با خواهش و تمنا سعی داشت آرامش کند چقدر آن چند روز اشک ریختیم گریه های سریا آنقدر سوزناک و از دل بود که همه حتی غریبه ها متأثر می شدند و اشک می ریختند و من از همه بدبختتر هم به حال خودم زار میزدم و هم به حال سریا بعد از سالها محمد نزدیکم بود و من لذت تلخ داشتن محمد در عین نداشتن را تجربه میکردم نزدیکم بود جلوی چشمهایم ولی دور بود به وسعت حریم بین دو غریب و من مجبور بودم مواظب به رفتار و نگاه هم باشم که به سمت او چرخه چون از او هم غیر از توجه توی ماشین دیگر توجهی ندیده بودم. زجر میکشیدم و خون گریه میکردم. او مرا نمیدید و من مجبور بودم که ندیدش بگیرم و خون سرد از کنارش بگذرم. و باید اعتراف کنم آن روزها من بیشتر از زخم دل خودم بود و برای بیچارگی خودم که گریه میکردم، نه برای زهر خانم. بی محمد. نگاه کنجکو دیگران که میدانستم ما زیر نظر دارند و زچی که خودم برای بی تفاوت بودن میکشیدم دلم را به آتش میکشید و به بهانه یه زهر خانم همپ سرع یا اشک میریختم. من که سالها فقط برای دیدن او پر پر زده بودم حالا میفهمیدم دیدن او بدون داشتنش مثل زر زر مردن چقدر طاقت فرساست. با این همه، از تمام شدن این روزها و شروع شدن روزهای خفقان گذشته میترسیدم. تنها ماندن با کابوس لعنتی آن هشت سال که حالا با دیدن دوبارهاش مسلما مسلمان هم بود، فشار دلی و ترس از آینده و تردید نفسم را میبرید و من درمانده عقلم به جایی نمی رسید. به سختی ظاهرم را حفظ می کردم. چون با تمام آن احوال دوست نداشتم در چشمش زلیل باشم. همه این زجرهای طاقت فرسا را به تاوان یک حماقت یک ناپختگی که جوانیم را مثل برف توی آفتاب از من گرفته بود می و راهی برای فرار به عقلم نمیرسید. توی آن شلوغی و هنگامه اعضا هیچکس هیچ کس خبر از مقص آشفته و پریشان من نداشت که چطور زیر فشار له می شدم فرزان و مرتزا مرتب آنجا بودند و تقریبا تمام کارها به احده محمد بود خانه شلوغ بود و مرتب ادهی برای تسلیت در رفته آمد بودند و این چندتا از اقوام مادری سرعیا از مشهد آمده بودند که پذیرای مداوم از آنها توی یک آپارتمان کوچک مشکل بود گهگاه از شدت خستگی و سر و صدا حس کردم سرم دارد منفجر می شود. اما چاره ای نبود. در میان مهمانها فقط پیرمردی که اسمش سید جعفر و دایه زهرا خانم بود خیلی به دردمان خورده بود. چون هم سهر خیلی به او علاقه پیدا کرده و سرش با او گرم بود، هم دیگران به ملاحظه سن و سال سید جعفر در رفت و آمد و سر و صدا کردن مراعات کردند. و من چقدر صورت نورانی و مهربانش را دوست داشتم. می گفتند سید جعفر مردی عارف و متدین است که خیلی ها توی شهرشان به او اعتقاد دارند و بعضیها دوست دارند سیغه عقدشان را سید جعفر بخواند برای همین امیر گهگاه که آخر شبها فرصتی پیدا می کرد سر به سر سید جعفر می گذاشت و پیرمرد که بار اول بود امیر را میدید با چه محبتی جواب شوخه های امیر را میداد. یکی از همان شبها بود که محمد و مرتزا و امیر همراه چند نفر از اقوام سریا دور هم نشسته بودند و سید جعفر از پسرش پرسید آقا، بلاخره برای برگشتن بلیت گرفتی؟ امیر مهلت نداد و گفت. دایی جان، حالا چه اجاله ای داری؟ این همه راه اومدین. چند روز بیشتر بمونین خستگیتون در بره؟ سید جعفر مظلوم و خندان گفت. نه آقا، همین قطعه هم زیادی زحمت دادم. امیر به شوخی گفت. هاچ آقا، میترسین عروس و دومده عاقدگیر نیارن؟ به خدا تازه سوابم داره. داماد دو روزم دیرتر توی طلبی افته دو روزه. شما رو دعا میکنه. سید جعفر گفت. نه، این دفعه که نمیمونم. ولی محمد آقا قول داده منو برا عروسیش دعوت کنه. اشاره اون وقت میام ببینم برای دیرتر شدن دعا میکنه یا زود ترسیقه خوندن. امیر با تعجب گفت محمد غلده، محمد غلط کرده، اون سر دنیا کجا، من و شما کجا؟ محمد با لبخند گفت حالا کی گفته من اونجا میخوام زم بگیرم؟ احساس کردم تمام خونه تنم توی صورتم دوید سینیه چای را به امیر دادم و فوری تقریباً فرار کردم توی آشپزخانه. دردی که هستی آدم را بسوزاند و بخواهی از دیگران مخفیش کنی تازه لبخند هم بزنی، اصابش چند برابر میشود. یک آن فکر کردم کاش ازدواج کرده بود. کاش من ازدواج کرده بودم. کاش یک عاملی جبرن با اسم شد این شکنجه تمام شود. خسته شدم. چقدر این زجر را تحمل کنم درد اینکه که نتوانی حرف بزنی نتوانی فریاد بزنی و آنچه دارد خفت می کند بیرون بریزی و آن وقت قیافه ظاهر و آرام هم داشته باشی درد کمی نیست نمیدانستم از وعظم از خری خودم بخندم یا گریه کنم بعد از چند سال انتظار حالا به بهانه مرگ یک بنده خدا نستیکم بود بدون اینکه حتی جرأت کنم راحت نگاهش کنم. مثل یک قریبه. هجوم احساس مختلف وجودم را له می کرد. آخر حاصل این وحس چه بود؟ حاضر بودم باقی عمرم را هم همین طور سر کنم. نمی دانستم. خدایا، چه نیروی توی این وجود بود که مرا این طور اسیر کرده بود؟ قسمت اعظم جوانیم را گرفته بود همه ی افکار و تمام زندگیم را. این چه رازی بود که این همه زجر نتوانسته بود بیزارم کند؟ چه باعث می شد اینطور بردوار حتی به این شکل نزدیکش بودن هم رازی باشم و شکنجه هایی را که فرسوده ام میکرد تحمل کنم؟ خدایا، من احمق بودم یا مجنون؟ چرا وجودش به من آرامش میداد؟ حتی حالا که ندید ام در رفتار او چه بود که به من اطمینان قلب میداد؟ نمیدانم؟ شاید به این خاطر بود که برخلاف آنکه همه فکر میکنند یک زن ممکن است عاشق پول یا ظاهر یا رفتار مرد شود زن همیشه عاشق قدرت مرد می شود و در نهان وجود خودش نمیتواند به مردی عشق ورزد که به قدرتش ایمان ندارد محمد مردی بود که این حسرا که قدرت دارد در من به وجود می آورد. قبولش داشتم و اعتقادم به اینکه هر تصمیمی می درست است باعث اطمینان امیق و قلبیم به او میشد و همین مقهور و اسیرم می کرد ولی آخر تا کی؟ تا کی می توانستم با یک فکر زندگی کنم؟ من بودم و آینده ای مبهم که با دیدن دوباره او تلختر از همیشه پیش چشمم مجسم میشد و گذشته ای که دوباره با شدت زنده شده بود با شکنجه مدام روزها مثل برخ گذشت و شب هفته زهر خانم رسید زمان که به خاطر دل آدمها از حرکت ایستاده که این بار به خاطر دل بدبخت من به